اصل دوم از نا کجا ظهور مغلن آنها در دلیهون بلداغ در کرانه رود اونان بودند و چنگیز خان در همانجا به دنیا آمد و هنگام تولد لخته خونی در دست راستش قرار داشت تاریخ سری مغلن تاریخ سری مقالان شرح می دهد که تموچین فاتح آینده در حالی که لخته خونی به اندازه استخوان سرنگوش در دست راست خود داشت متولد شد. مدتی بعد یک شمن این را به عنوان نشانه ای امید بخش تعبیر کرد مبنی بر اینکه او جنگجویی بزرگ خواهد شد. گزارش های رسمی دیگر در مورد تولد تموچین ادعا می کنند. که پرتوی از نور میان خیمه مادر او آمد و خبر داد که باردار می و پسری به دنیا خواهی آورد که فاتح جهان خواهد شد اعتقاد به توانایی باردار شدن به وسیله یک پرتو نور در میان کوچنشینان دشت پهناور فراگیر بود زیرا آین شمنیسم یا روح پرستی نور را روحی قدرتمند به شمار می آورد. تاریخ نویسان معتقدند که تموچین حدود سال 1167 میلادی به دنیا آمد اگرچه ممکن است که خود او سال دقیق تولدش را هرگز ندانسته باشد. قبایل دشت پهناورد به این سبب که خط نداشتند تاریخها را ثبت نمی و نمی توانستند سنین را به صورت دقیق تعیین کنند. جاو هوانگ، سیاه چینی، در سفرنامه خود شهر داده است که بارها از مغولان در مورد سنان ها سوال کرده است و آنها خندیده و پاسخ دادهند ما هیچ وقت این را ندانسته‌ایم منشأ تموچین نام تموچین از ریشه تمور به معنی آهن بود تموچین که از خانواده ای آهنگر بود گهوارش نیز از آهن ساخته شده بود و یک برادرش به نام تموج و یک خواهرش به نام تمولین نیز همانند اون نام از ریشه تمور داشتند. یسوکای پدر تموچین از قبیله غیات برجیغین بود که با قبیله تایجیوت قبیله جنگلنشین از شکارگران و ماهیگیران خیشاوندی داشتند. پدر تموچین گروهی از پیروان موسوم به نخود را گرد آورده و در کرانه رود اونون سکنا گزیده بود. او از اشراف دشت پهناور بود و به عنوان رهبر یا بهادر مهارت خود را در جنگ و دزدی نشان داده بود. هایلون مادر تموچین از قبیله مرکیت بود. یسوکای هنگام بازگشت از نبردی پیروز بر سر راه خود در دشت پهناور با هایلون روبرو شد و او را از مرد دیگری که به عنوان عروس به خانه خود برده بودش رو بود. مردان کوچنشین غالباً زنانی را که به طور اتفاقی در دشت پهناور می میرو بودند. این کار برای مغلان که به برون همسری می پرداختند و تنها با زنانی خارج از قبیله خود ازدواج می راهی بود برای اشتناب از سفرهای طولانی که معمولا برای یافتن همسر صورت می گرفت. خانواده تموچین پر جمعیت بود. یک خواهر بزرگتر به نام تمولین و سه برادر به نام های جوچی قصار غاچیون و تموجه همراه با دو برادر ناتنی به اسامی بختر و بلغوتای که فرزندان همسر دوم پدرش بودند بزرگ شدن در دشت پهناور تموچین و دیگر فرزندان خانواده در اردوی خود در ساحل رود اونون در شمال مغولستان رسوم قوم خود را آموختند آنها مانند همه کودکان مغول اسب سواری یاد گرفتند و با پرتاب تیر به طرف پرندگان به تمرین تیر می پرداختند آنها در زمستان روی یخ‌های رود اونون بازی می‌کردند بهترین دوست تموچین پسری از قبیله جدرات به نام جاموغه بود تموچین و جاموغه توی مراسمی موسوم به آندا یا سوگند برادر خونی شدند. طی این مراسم آنها استخوان‌های پای گوسفند را به عنوان یادگار با یکدیگر رد و بدل و سوگند دوستی ابدی یاد کردند. در میان کوشنشینان آندا پیمان مهمی بود که میان اعضای توایف مختلف بسته می‌شد و وفاداری میان برادران سوگند خورده حتی از پیوند خونی امیق تر بود. آندا غالبا با نوشیدن مایعات از ظرفی که چند قطره از خون دو طرف پیمان در آن آمیخته شده بود، تحکیم می‌یافت. هدیه‌ای از قبیله لباس یا اسب نیز میان برادران سوگند خورده رد و بدل می‌شد. برای تحکیم پیمان خود، تموچین تیری به جاموقه داد که پیکان آن را از چوب درخت سرو تراشیده بود. و جاموغه تیری ساخته شده از شاخ گوساله را به تموچین داد که سوراخ هایی در آن تعبیه شده بود طوری که وقتی پرتاب میشد سفیر می کشید هنگامی که تموچین حدود نه سال داشت پدرش در جستجوی نام زدی برای پسر خود برآمد سن ازدواج مغولان پایین بود آنها از ازدواج به عنوان وسیله ای برای تشکیل اتحادها و افزایش اعتبار خانواده استفاده می کردندنداسکهایی در میان قبیله اونگیرات در جستجوی همسری برای تموچین برآد. فرستادن پسر برای زندگی با والدین همسر آینده خود به مدت یک سال پیش از آنکه ازدواج کند رسمی فراگیر در میان کوچنشینان مغول بود پانواده عروس بر این کار به عنوان طریقی برای تایید پرداخت جهیز که همراه با دخترشان می دادند، پافشاری می کردند. یسوکای دختری به نام برته را انتخاب کرد که یک سال از تموچین بزرگتر بود و جهیز گرانبه داشت که ردایی از خز سمور بود. بنابراین یسوکای با درک اینکه تموچین باید یک سال در طایفه برته بماند، او را درانجا باقی گذاشت. درگزشت یسوکای یسوکای پس از ترک پسر خود هنگام تاختن به طرف خانه ادهی تاتار را دید که در دشت به خوشگذرانی مشغولند چون در میان کوچنشینان دشت پهناور مرسوم بود که از غریبه ها مهمان نوازی کنند یسوکای در کنار اردوگاه آنها توقف کرد ولی تاتارها او را شناختند که است که سابقاً از آنها دزدی کرده بود. تاتارها در خفا به غذایی که به او تعارف کردند، زهر ریختند و یسوکای در ادامه سفر سخت بیمار شد و پی برد که به زودی خواهد مرد. یسوکای خواست که پسرش هنگام مرگش همراه با خانوادهش در خانه باشد و پس از رسیدن به اردوی خود، یکی از نخود خود را برای احزار تموشین فرستاد. تموجین به اردوی خانواده بازگشت اما پس از مرگ یسوکای نخود بدون رئیس از هم پاشید و آنها تموجین و خانواده او را تنها گذاشتند هرچند هوئلون در تلاش برای گرد هم آوردن دوباره اعضای اردو سوار بر اسب شد و پرچم قبیله را به دست گرفت اما قبیله دیگر یعنی قبیله تایجیوت پیروان یسوکای را متقاعد ساخت که با ترک خدمت آن قبیله به آنها به پیوندند اما قبیله تایجیوت از پذیرش هوئالون و فرزندان او خودداری کرد و برادران یسوکای که گمان میرفت مسئولیت هوئالون و پسرانش به عهده آنان قرار گیرد یا از حمایت او خودداری کردند یا اینکه هوئالون از ازدواج با هر یک از آنها امتنا کرد به این شکل هوئالون مادر چنگیزخان آینده بدون اردو تایفه یا شوهر به حال خود گذاشته شد زندگی در دشت پهناور بدون ای برای حمایت خطرناک بود پاول راچنفسکی مورخ در کتاب تاریخ مغلان نوشته است کوچنشینانی که از قبیله خود جدا می شدند و در انزوا زندگی می کردند در معرض خطرهای بسیاری بودند به خصوص خطر از دست دادن عصف هایشان که دارایی بیبدیلی برای کوچنشینان بودند و در حقیقت طولی نکشید که عصف های خانواده تموچین را دزدیدند. حوالون و پسرانش بدون تایف یا خیشاوند با جمعاوری دانه ها ماهیگیری در ساحل رود انون و شکار موش و موش صحرایی غذای روزانهشان را تأمین می به زودی پسران هوئلون شروع کردند به شکایت که برادران ناتنیشان بختر و بلغوتای از آنها غذا می دزدند. آنها به هوئلون گفتند یک ماهی عالی سید کرده بودیم که برادرانمان من بختر و بلغوتای آن را از ما گرفتند. کمی قبل نیز چکاوکی را که با تیر زده بودیم از ما گرفتند و حالا دوباره از ما دزدی کردند. ما چگونه میتوانیم با هم زندگی کنیم. در رسوم کوچنشینان برای تحقق بقای تایفه تقسیم غذا اهمیتی اساسی داشت. بختر و بلغوتای از احترام گذاشتن به این رسم خودداری می کردن. کوشید تا پسران را متقاعد سازد که با هم توافق داشته باشند و به آنها گفت که مسئولیت دارند به خاطر تحقیر شدن خود از سوی قبیله ی تایجیوت از آنان انتقام بگیرند. برادرکشی تموچین در چهارده سالگی قاطعانه تصمیم گرفت که رئیس خانواده شود وی همراه با برادرش جوچی غصار هنگامی که بختر در حال مراقبت از اسب‌ها بود به او نزدیک شدند دو پسر بختر را از فاصلی نزدیک با تیر زدند بختر تلاشی برای فرار یا نجات خود نکرد اما از آنها خواهش کرد که از کشتن بلقوتای برادر کوچکتر او درگذرند هنگامی که هایلون از کشته شدن بختر با خبر شد از ترس جیغ کشید و سوگوارانه پسران قاتل خود را چونین مورد خطاب قرار داد وقتی هیچ همراهی جز سایه خود ندارید وقتی هیچ شلاقی جز دنبالی لباس خود ندارید وقتی میگویید به وسیله چه کسی انتقام خواهیم گرفت این رفتار را با هم دیگر میکنید. پس از قتل بختر اعضای قبیله تایجیوت به اردوی هوئلن در ساحل رودخانه حمله کردند و تموچین را از ترس اینکه احتمالاً در تلاشی برای انتقام جویی به آنها صدمه بزند اسیر کردند. تموشین چند ماه اسیر بود ولی با یافتن همپیمانانی در میان اعضای قبیله تایجیوت فرار کرد. خانواده ای که به او علاق مند شده بودند مخفیش کردند و سپس به او اسب و آزوغ دادند. تموچین تا رسیدن روز جشنی برای قبیله ی تایجیوت منتظر ماند و آنگاه از فرصت استفاده کرد و دور از چشم دیگران به راه افتاد و به نزده خانواده بازگشت. هنگامی که تموچین پانزده ساله به نزد خانواده بازگشت در جستجوی نامزد خود برته برآمد که او را از زمانی که نه ساله بود ندیده بود او و بلغوتای وارد اردوی اونگیرات شدند و برته را همراه با جهیزش که یک ردای سیاه از خز سمور بود به خانه بردند این ردا به معنی حدیهی برای هائلون مادر شاهرش بود اما خانواده نقشه های دیگری برای آن داشت طلب حمایت در میان کوچنشینان دشت پهناور خز سمور شاه خزها به شمار می آمد و تا 2000 سکه طلای بیزانسی ارزش داشت تموچین در نظر داشت که ردا را به پشتیبانی هدیه کند که حمایت از بقایای خانواده او را بپذیرد و به او یاری کند تا به شمار پیروان خود بیافزاید تموچین در این زمان پیروان کمی داشت فقط برادرانش و مرد جوانی به نامه بورچو از او پیروی می کردند. بورچو که عضو قبیله آرولات بود پس از آنکه که تموچین با یاری او عصبهایش را از دزدها پس گرفت و نیمی از آنها را به او هدیه داد از تموچین حمایت کرد تموچین هرچند ضرورت حمایت یک رئیس قدرتمند از خود را درک می کرد اما نمی به عنوان نخود یا پیرو محض به خدمت یک حامی در آید او آنقدر جاه طلب بود که می خود رئیس شود تموچین تصمیم گرفت که خواستار حمایت تقرل شود که رئیس کرایت ها و یک دوست آندای سابق پدرش بود تموچین به او گفت در گذشته تو سوگند دوستی با پدرم یسوکایی یاد کرده ای بنابراین تو مانند پدر خودم هستی و من هدیه عروسی همسرم را برای تو آورده توغرل با دیدن ردای خاز سمور بسیار خوشنود شد و به تموچین گفت در مقابل بالاپوش سیاه خاز سمور من افراد تو را که خود را جدا ساختند برای تو جمع آوری می‌کنم تموچین از طریق رابطه با توغرل اعتبار خود را در میان قبایل دشت پهناور بالا برد از آنجا که توغرل مردی معتبر بود و تموچین را نیز نه فقط به عنوان نخود بلکه به عنوان رئیس تحت حمایت خود گرفته بود، هنگامی که خبر پیمان بستن تموچین با او منتشر شد، تموچین پیروان بسیار بیشتری به دست آورد. مردی که تحت فرمان یسوکای، پدر تموچین، خدمت کرده بود، پسر خود را به عنوان ملازم یا خدمتکار به او هدیه کرد. به زودی جوانان مغل به صفدر آمدن تا پیرو تموچین شوند و در زیر پرچمی به او خدمت کنند، که هایلون سالها پیش از آن در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی تایفه بالا برده بود. تموچین در این زمان یک همسر و یک پیمان دوستی با حامی قدرتمند داشت و شمار پیروانش به افضایش بود. حمله مرکیت ها هنگامی که مرکیت ها متلع شدن تموچین همسری اختیار کرده است به این نتیجه رسیدند که زمان گرفتن انتقام ربودن فرا رسیده است. تموچین در این زمان هفته سال داشت. مردی که یسوکای هویلون را از او ربوده بود دیگر زنده نبود. اما چنان که پاول راشنفسکی نوشته است، انتقام یک تعهد خانوادگی بود که از نسلی به نسل بعدی انتقال میافد. کیفر عمل پدر یعنی یسوکای باید بر سر تموچین میامد. رسم کینه خانوادگی در دشت پهناور باعث می شد که یک عمل خلاف همیشه مورد حساب رسی قرار بگیرد حتی به وسیله نسل بعدی اردوی تموچین مورد حمله گروهی 300 نفره نفر از مرکیت ها قرار گرفت تموچین که می آنها خواستار همسر او به تلافی روبود شدنه حوالون هستند برته را پشت سر خود باقی گذاشت تا اسیر شود و خود به زحمت گریخت و جان به در برد چنانچه او بورته را با اسبی روانه می کرد و خود در برابر مرکیت های استادگی می کرد کشته می و طایفه او بدون حمایت یک رئیس به حال خود رها شد به حال خود گذاشتن بورته امروز عملی از روی بیاتفگی به نظر می رسد در حالی که در جامعهی که زنان حتی مادر خود تموچین کالایی منقول به شمار می و در جنگ ها اسیر می و همچون غنیمت تصاحب می عملی عادی بود. تموچین پس از فرار آسمان آبی ابدی را به خاطر نجات دادن او از خطر شکت کرد و به این گمان افتاد که برای او مقدر شده است که کامیاب شود. تموچین به منظور باز پس گرفتن برته از تغرل حامی جدید خود کمک خواست او به کمک تغرل سپاهی در برابر مرکیت ها گرد آورد و جاموغ دوست دوران کودکی خود را به فرماندهی آن گماشت تموجین همچنین گروهی از رمهداران را که نخستین سپاهیانش بودند به حرکت درآورد و آنان را به جنگ کشاند این مردان جنگجویانی تعلیم دیده نبودند اما مشتاق جنگیدن برای تموجین بودند به این امید که بتوانند در جنگ پیروز و در غارت اشیاء، حیوانات و زنان سحیم شوند سپاه‌های تحت فرمان جاموغه و تموجین مرکیدها را شکست دادند و آنها را به فرار شبانه واداشتند. هنگامی که جنگ پایان یافت، تموچین دوباره به بورت ملحب شد و پیروز مندان فریاد زد. سرنوشتی را که به دنبالش بودم یافتم. بورت کمی پس از رهایی پسری به دنیا آورد که او را جوچی نامیدند که به معنی غیر منتظره بود. رقابت جاموغه و تموچین پس از پیروزی بر ها به کوچ پرداختند. و بیش از یک سال با هم اردو زدند هرچند گروه های کوچنشین معمولند پس از چنان نوردهایی جدا می شدند تموچین و جاموق قادر به جدایی از هم نبودند آنها پیمان آندای خود را تجدید کردند و اسب ها و لباسهایی را که غارت کرده بودند رد و بدل نمودند اردوهای آنها همراه هم از یک چراگاه به چراگاهی دیگر می رفتند برادران خونی با یکدیگر به خوشگذرانی و رقص می پرداختند و هنگام شب جدا از دیگران زیر یک رو انداز می خوابیدند تموچین که با غنائمه به دست آمده از مرکیت ها سروتمند شده بود نامزدی جدی برای سروری بر همه قبایل مغل به شمار می آمد. ولی جاموغه نیز خواهان رهبری قبایل مغل بود با وجود دوستی نزدیک میان دو مرد تفاوتهای میان آنها وجود داشت جاموغه از پشتیبانی مردان عادی برخوردار بود که از گله های گوزفند نگهداری می و تنها چند اسب داشتند برعکس تموچین اشراف زاده بود و به اشراف که بیشتر آنها صاحب گله های عصب بودند نظر لطف داشت با این عقیده که آنها کلید قدرت و نفوز هستند این اختلاف باعث استکاک میان دو دوست گردید و سرانجام تموچین را داشت تا راه خود را از جاموغه جدا کند اردوی به هم پیوسته ی آنها از هم پاشید و ادهی ترجیح دادند که به دنبال تموچین بروند و بقیه با جاموغه مندند با وجود این جاذبه و سخاوت تموچین حتی بعضی از پیروان جاموغه را ترقیب کرد تا به فکر تغییر بیعت بیافتند تموچین زیرک بود و می چگونه وارد معامله شود او برای کسب وفاداری آنها به آنان وعدی ریاست و زنان زیبا را داد به این شرط که به رهبری مغالان برسد مردم شروع به انتشار داستانهایی درباره تموچین نمودند و ادعا کردند که او معمولیتی از آسمان دارد و سرنوشتش این است که سرور دشت پهناور شود ادعیه داو کردند که شاهد نشانه‌ای بودند که طی آن گاو نر سفیدی نعره‌زد. آسمان و زمین توافق کرده‌اند تموچین سرور امپراتوری شود. من این امپراتوری را برای او می‌آورم. تاب تنگری شمن مغول اعلام کرد که خدای متعال آسمان آبی ابدی نیز به او گفته بود تمامت روی زمین به تمرجین همان تموچین و فرزندان او دادم. تموچین خود معتقد بود که دارای فرمانی از آسمان است و اعلام کرد. قدرت من به وسیله آسمان و زمین استحکام یافت. من به وسیله زمین مادر به اینجا آورده شدم با تقدیری از پیش برای این امر از سوی آسمان مقتدر. شهرت به دلیل سخاوت چون تموچین خود قبیله ای نداشت، باید با کسب شهرت به عنوان رئیسی عادل و سخاوتمند، پیروان یا نخودی را به خدمت می گرفت. اون نسبت به کسانی که به او می سخاوت داشت و به آنها اسب و خز می بخشید. بسیاری از کسانی که تحت فرمان رو عصای بی رنج می بردن، تغییر بیعت داده به او پیوستند و گفتند امیر تموچین افراد خود را در لباس خودش می پوشاند. به آنها اجازه می دهد که اسبان خود او را سوار شوند. این مرد قطعا می تواند را برای قبیل برمغان آورد و بر ملت حکومت کند. شهرت تموچین فزونی یافت و افراد و گروه از بسیاری از قبایل مختلف خواهان آن شدند که نخود او گردند. توایف مختلف مغل او را به چشم قهرمان خود و کسی می که همه قبایل مغول را متحد خواهد کرد در این ضمن رؤسای مغلی که ترجیح داده بودند در کنار تموجین و در مقابل جاموغه قرار گیرند به توافق رسیده بودند که به شخصی واحد برای رهبری خود نیاز دارند هرچند هیچ یک از آنان اعتماد یا تمایلی به خدمت تحت فرمان هیچ یک از آن دور نداشت اما تموجین که دلاوری و شخصیت او به سرعت شکلی افسانه‌ای می‌یافت عنوان رهبری عادل و قابل اعتماد در نظر گرفته می شد. به علاوه، پدر تموچین یک رئیس بود و این پیشینه اشرافی او را به عنوان مردی از تباری معتبر مشخص می ساخت. بنابراین در سال 1183 میلادی رؤسای مغل، مجمعی، همان، غریلتای، تشکیل دادند و تموچین را به عنوان خان یا رهبر خود انتخاب کردند. روحسا عهد کردند که تموچین در رأس قوم خود به اداره امور بپردازد و همواره آنها را بر ضد دشمنانشان رهبری کند و آنها نیز خود را همانند برق بر دشمنان خیش بیفت کنند. آنها عهد کردند که در جنگ از او اطاعت کنند و در زمان صلح در کارهای او مداخله نکنند. تاریخ سری سوگندی را که پیش از انتخاب تموچین به مقام خانی در برابر او یاد گردید شهر داده است تموچین هنگامی که تو خان شوی ما به عنوان سرنیزه تو به دشمنان پرشمار خواهیم تاخت و زنان و دوشیزگان زیبا و خیمه های رسمی آنها را باز خواهیم آورد و از قبایل بیگانه زنان و دوشیزگان خوبرو و نیز اسبان اختی یورتم رونده خوشپایشان را خواهیم آورد و به تو هدیه خواهیم کرد هنگام شکار که شکارگران خواهیم بود و حیوانات کشته شده را به تو خواهیم داد. حیوانات دشت پهناور را به چنان تعدادی که کفل‌هایشان با هم مماس شود به طرف تو خواهیم راند. اگر در روز نبرد از فرمان‌های تو اطاعت نکنیم، ما را از اموالمان، از همسرانمان و از زنان تحت تملکمان جدا ساز و سرهای شریر ما را بر دشت پهناور تو هی بیانداز. اگر در زمان صلح از قول خود به تو برگردیم ما را از خدمتکاران مال از زنان تحت تملک و فرزندانمان جدا ساز و به سرزمینی بی‌رهبر تبعید کن